رامین این گفتگو را بخوان، حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است در این مجله با استاد محمود فرشیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاب چاپ شده استاد فرشیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام می‌گذارند. ببین چقدر نقاشی های او ظریف است؟ این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور نام دارد دوستاد دا فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا می کنند. پس در اصل این هنر برای تزیین کتاب ها به کار می نه در کتاب بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی داستانها به سبک مینیاتور نقاشی شده است در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است همینطور است من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم پس حتما این مقاله را بخوان.